آیت راشیدن این موی زاید زیر بغل یا زیر نف با تیغ جایزه یا با پومات با هر دو جایزه هر جور راحتی فقط بر بدارید از عدف برداشتن هست هم با تیغ و هم با پومات و هم با پودر برداشتن اما در خود سنت این است که بهترین است که موی زیر بغل کنده شود موی زیر بغل تو در احادیث آمده لفظ کندن آمده لفظ موها بکنید ا کسی دیگه اذیت نمیشه حضرت امام شافی رحمه الله یک روز حجام و ورقی بوهازی بنا بذار داشت که بوخار بی تراشی که از علما وارث شد فهمید که عالم از فوراً اعتراض میکنه در حدیث آماده بکنید فوراً فرمودن که بله میدونم حکمش کندن است اما من اذیت میشم من میگم بی اول اعلی خود بویزیره به صلاح زیر بغل حکمش کندن است دو احادیث حتما حکمتات العظمی بزر داره چرا باید تنده به بی هر حال اما اگر کسی با پودر برداشت یا بوسیله پماد برداشت یا بوسیله تیغی برداشت بازم جائز هست و گناه نیست این اشکالی ندارد بعد این است که در مورد خود موهای زائد بدن در کلی اینه ما سن و مو داخل بدن داریم یک مو, مو موی هست که زدن آن حرام هست مانند آبرو منند مجه اینها رو کندن و برداشتن حرام هست یک موی داریم که ماندنش حرام هست زیر ناف زیر بغل. اگر چهیل روز بیشتر راز شد اینها رو کسی اگر نزد این گناهکار میشه نباید بیش از چهیل روز داد میشه یک موی داریم که مباحث بوهای دست پاس دینه اینها خلاف عدب هم اگر کسی برداشت گناهکار نمیشه اما خلاف ادب کرده بهتر است بر نداره اما کسی بسیار از زیادون می تواند بر بدارد حالا این هر محل ها حمام هست باید اولوام میگن در فاظورت نه اندازید این البته این دیگه حدیث نیست این حکمت است میگن که بعضی بیماری ها و سوی حافظه وسان ها دست میدهد. حالا با مسئله بعدی از اس آی استفاده تی و جلیت برای خانوما جایز جایز نیست شو خیلی زیاد پرسیده میشه بله اشکال نداره چون در لفظ حدیث صحیح بخاری برای خانمها لفظ لیستهد المغیبه آمده تا کسی ام آغاشت خورنیست از تیغ استفاده بکنه اونجا لفظ کندن نا آمده لفظ تراشیدن آمده در بعضی سورت ها چیز اضافه هم بکنم حالت برداشتن موهای زائد یا ناقن های دست پای نه در حالت ناپاکی کراهیت دارد کسی ناپاک هست قصد او وادیو شده در این حالت مکروه هست سعی کنه حالا بر حال خودشو پاک بکنه بعد اینها رو بر بیداره آره بید. اما این مسئله دیگه هم بینگدام وردیم حالا مسئله مو آمد مو زاید حالا در ایامی که مو زاید حالا ما مکروه است. مکروح هست سخانوی حالتای مزدوری قرار میگیره علا نزدی به چهر روز رسیده در از چه روز دل میشه بل بتراشه چون داره برگناه دار وارد میشه وارد.